سال 1942 بعد از انجریان، بزرگترین واقعه زندگی من، سال روز تولد هیتلر بیستم آوریل 1942 بود. من و یک نفر دیگر از سازمان جوانان نیروی هوایی هیتلری در مراسمی که به مناسبت سالگرد تولد پیشوا برپا شده بود. همراه با سایر نمایندگان برگزیده‌ای که از مناطق مختلف آلمان آمده بودند، شرکت کردیم. در ساعت اولیه بامداد به ایستگاه راه آهن آنهالتر در برلین وارد شدیم و پس از آنکه با یکی از مقامات ارشد سازمان جوانان هیتلری دیدار کردیم، ما را به استراحتگاهی بردند. در آنجا با دیگر نمایندگان سازمان جوانان هیتلری آشنا شدیم. اندکی بعد با پرچم های افراشته و رپرپه‌ی تبلها و قوقای شیپورها به سوی کاخ نخست وزیری رایش رژه رفتیم. دسته موزیک که از برلین آمده بود در صف جلو حرکت می‌کرد و پشت سر آن سه نفر از بچه‌ها پرچم‌های سازمان جوانان هیتلری سازمان جوانان نیروی هوایی و دریایی هیتلری را حمل می‌کردند. در پی آنها سه گروه متشکل از 90 نفر حرکت می‌کردند. با وجود نمایشی که به راه بودیم مردمی که در خیابان بودند اهالی برلین توجه چندانی به ما نداشتند آنها نیم نگاهی به ما میانداختند و با شتاب دنبال کارشان میرفتند در کاخ نخست وزیری افسران سنی رو از ما استقبال کردند و هر گروه به طور جداگانه پذیرایی شدند میزبان ما سروان هانس خیم مارسل خلبان هواپیماهای جنگی و جمعی سپاه آفریقا بود از ما با لیوانهای بزرگ کاکاو نوشابهای که از آغاز جنگ دیگر ندیده بودیم پذیرایی کرد سروان مارسل ما را با شرح های مهمی که به عنوان یک خلبان جنگی انجام داده بود سرگرم کرد ظاهرا او با تصویری که از یک قهرمان در ذهن خود ساخته بودیم هماهنگی کامل داشت چند ساعتی نگذشته بود که لحظه موعود فرا رسید و همه همگی به محوته فراخوانده شدیم همه در دل احساس ترس می کردیم، ترس از حضور تهدید کننده پیشوا توجه دسته موزیک شور به نواختن کرد سپس در بزرگی باز شد و پیشوا با همراهانش ظاهر شدند او نیمتنهٔ نظامی به رنگ خاکستری و شلوار مشکی پوشیده بود ایست خبر دار یک افسر برلینی گزارش نظامی را به استهزار رساند سپس پیشوا نگاهش را به ما دوخت. نمایندگان بلند پایه هر سه گروه پیش رفتند. پایینترین درجه حاضر در محبت فرمانده جوخه بود. و سخنگوی آنها چنین آغاز کرد. پیشوای من! به نمایندگی از سوی کلیه اعضای سازمان جوانان هیتلری به اینجا آمده ایم تا پنجاه و دومین سالگرد تولدتان را به شما شاد باش بگوییم. خداوند نگهدار شما باد. زیرا تنها با شما و به خاطر شما به پیروزی نهایی دست خواهیم یافت. پیشوای من، از سوی تمامی ملت آلمان، به خاطر خدماتی که برای کشور انجام داده اید، از شما سپاس گذاریم. در این لحظه یکی از بچه های یک دسته بزرگ گل داوودی و دیگری پاکتی حاوی هزار مارک که برای کمک به جبه آوری شده بود تقدیم کردند. پیشوا هم آنها را به یک افسر اس, اس داد که گویا آجودانه او بود. که نماینده ها به جای خود بازگشتند پیشوا رو به ما کرد و با لبخندی واقعی که چهره بی فروغ او را رو روشن میکرد گفت. آقایان من خیلی از شما متشکرم که به اینجا آمدهید تا به نمایندگی از طرف رفقای خود به من تبریک بگویید. از همه شما ممنونم فراموش نکنید که به رغم همه دشواری ها تنها به پشتوانه شماست که میتوانم یک آلمان پیروز و سرافراز بنا کنم شما سازندگان فردای آلمان هستید. لطف خداوند تا کنون شامل حال من بوده و یقین دارم که پیروزی را هم از آن ما خواهد کرد. لحظه سکوت همه جا را فرا گرفت تا اینکه فرمانده ما فریاد زد به افتخار پیشوا! سلام بر پیروزی! سلام بر پیروزی! سلام بر پیروزی! پیشوا برای دست دادن با ما جلو آمد. در حالی که خبرداری ایستاده بودم با بیقراری منتظر بودم که به طرف من بیاید. سعی می کردم خودم را برای آن لحظه بزرگ آماده کنم. اما به سختی می توانستم حواسم را متمرکز کنم. ناگهان مقابل من ایستاد و با من دست داد. سلام پیشوای من. چند سال داری و اهل کجا هستی جوان عزیزم؟ ده سال دارم و اهل حابستاد مونیخ هستم. او با مهربانی به من نگاه کرد. پس تو یک باواریایی کوچولو هستی؟ با ها همیشه وفادارترین دوستان من بودند. به طرف نفر بعدی رفت. لحظه معود مثل برق و باد گذشته بود. در آن هنگام این دیدار را بزرگترین و باشکوهترین رویداد زندگی خود میپنداشتم. حقیقتا بر این باور بودم که کشور من و پیشوای من مهمترین چیزهای روی زمین هستند. در آن هنگام از حلقه‌های دودی که بیوقفه از کوره های آدمسوزی آشویتس به آسمان میرفت اطلاع چندانی نداشتم دودی که ی پایان عمر تمدن بود و از آغاز عصر وحشیگری و انهدام خبر میداد چه قافل بودم از پنجههای خشکیده در سیم‌های خاردار و چشمان از هداق درآمدهٔ آدمهای نوامیدی که در اثر برق گرفتگی بر فراز حسارهای سیمی معلق مانده بودند گویی آنچه در زمان حیات خود آرزو می کردند در مرگ یافته بودند آزادی؟ نه من اینها و بسیاری چیزهای دیگر را نمیدانستم اگرچه نا من و هموطنانم ما را از مسئولیت ما برا بر نمی کند. با وجود آن برای درک حقیقت ماجرا باید راه درازی را می پیمودم.